الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وأله وصحبه أجمعين أما بعد. شاور من جلسات. از جلسات مرور بكتاب الحاد. دكتور صالح السندي. آخرين درس كنا درشين آخرين بحث كنا درشين بحث الحاد بأسبابش. أسباب الحاد كي ودا. ما چند تا مورد رو گفتیم چند تا مورد هم بازم موند که شاء امشب با هم دیگه مروری خواهیم داشت بر اون اسبابی که اینجا مؤلف در کتابش یاد میکنه اولین سببی که یاد شد بحث گفتیم سرشکستگی بود در مقابل غرب ما مسلمان عقب افتاده ایم این اولین مطلبی بود اولین سؤالی بود یعنی مسلمان خودش رو سرشکسته میبینه مسلمان خودش رو سربلند بلند در مقابل حسین غربی ها با پیشرفت و با اون عدباتی که در دست دارن از علم روس دومی سبب بحث بحث اصلی مونه. اصل مشکل منه عدم اشتناخت خدا و صفاتش مشکلی که مردم دارن در بحث قضا و قدر این اساس مشکله وقتی انسان خدا, خدا رو نشناسه صفاتش اون سخنش رو انسان نشنیده از اون قرآن و از اون وحی الهی خب مسلما در جهود میفته در انکار میفته در استک میفته در انکار وجود خدا میفته خب خدا رو نشناخته سخن از خداوند نشنیده نشیده هم دنباله. کتابی از کتابای که خداون نازل کرده و فرستاده بخونه نه توراتی نه چه از کتابی قبل از اسلام بوده چه قرآنش نرفته نخونده هیچ از هیچ پیغمبرینی نشنیده خب چطور ایمان بیاره چطور باور داشته باشه که الهی خالقی و آفریدگاری هم وجود داره سراب سوم قصش چوشو مغزی هست دانشجوی ما هست رفته خارج درس مونده یا کسی از میان کفار باشه که زندگی میکنه از کتاباشو میخونه خب تحت تاثیر واقع میشه و فکر الهادی تصریح میشه به اون جوان ما خب این از اسبابه سبب چهارم بحث هوا و هوس بیبند و حب شهوته نمیتونه ازدواج میکنه نمیتونه اون جوان صاحب‌بنایی داشته باشه و در نتیجه در الحاد میفته یا اون دختری هم, هم اینطور کسی هم نیست که دستشو بگیره سر خونه و زندگیش ببره در الحاد می‌افته سبب پنجمی آخرین بحث مبحثی که دیشب داشتیم با هم بحث اشکالاتی است که در ذهن اون جوان ما ایجاد میشه خصوصا جوان تحصیل کرده که رفته کتابی رو برداشته مطالعه بکنه یارفته خارج درس می‌کنه یه سری اشکالاتی مطرح میشه پاسخواشم نمیتونه پیدا بکنه چون نه عربی بلده نه فارسی هم حالا فارسی که ولایده حالا خب. کتابه که دم دستش هست کتابایی نیست که بتونه پاسخگو باشه در مقابل اون اشکالاتی که در ذهنش ایجاد شده اما ششمین سبب ششمین سبب که از اینجا دیگه شروع میشه درس امشبمون چهارمین درسمون ششمین سبب جهل نسبت به دین اسلام و محاسن دین اسلام خب طرف هیچ چیزی از اسلام نمیدونه کتابی هم نخونده قرآنی نخونده قرآن اگر خونده باشم تو مکتب خونه فقط بردنش سر مکتب خونه گذاشتن این بخونی علفه به هست جیم هست داله و الى آخر حروف ابجدی یادش دادن به زور یادی گرفته بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالم شاید فاتحی هم بلد باشه و یا نباشه ولی خب معنای سوره فاتحه چیه؟ اصلا سوره فاتحه چی داره بهت میگه؟ هیچی نمیدونه، نخونده ترجمه قرآن هم پاسخگوش هم نبودن نرفته حتی هم ترجمهش بخونه یا اگر خوندم اون ترجمه قرآن پاسخگوش نبوده چون آیات به طور مجمل یا ترجمه شده به طوری که پاسخگوی اون اشکالاتش نباشه خب پس چی شمی سبب؟ میگه مؤلف اینجا خدا حفظش بکنه میگه الجهل دین الاسلام و محاسنه لو اقبل على هذا الدين العظیم عن كل نظریه اگر اینها می اومدن رو اسلام میوردن رو قرآن میوردن میفهمیدن کفایتشون میکرد اون تشنه‌گیشون رو برطرف می‌کرد اون گرسنگی‌شون رو برطرف میکرد ولی که دنبال اسلام نبودن لکفاهم عن کل نظریت و عن کل فکر و عن کل فلسفه پاسخگوشون بود غنیشون میکرد اصلا اون اسلام با اون کمالی که در اسلام هست از اون جواب ها و پاسخ ها جفریلانگ مثال بود جلسه دوم مطرح شد اسمش خب دنبال بندی خدا دنبال پاسخ اشکالاتش میگشت چرا پدرم مشروب میخوره چرا باید بخوره چرا مادرم باید کتک بزنه چرا این فساد و این درد و رنج باید میان ما باشه میره در قرآن رو باز میکنه قرآن رو میخونه اساس خلقت رو میخونه آفرینش خلقت آدم بعد اشکالی که برای فرشتگام پیش میاد که چرا آدم باید خلقت بشه میگه همین سوالات سآلات, سآلات خودمه را که در درسه درس دوم گذاشتم باور کنه انسان لازم داره که این سخن این پروفسور رو انسان سه چهار بار برور بکنه یعنی واقعا به انسان قوت قلب میده ایمان و اعتقاد میده خصوصا نسبت به قرآن و عرضشی و عرضش نسبت به اون سخنان و پاسخگویی که در اون سخنان هست نسبت به اون شبهات و اون اشکالاتی که مطرح میشه در در ذهن جوان ما واقعا غنی هست غنی هست برای اون کسی که میدونه ازش برداشت بکنه از اون امق اون قرآن بیاد درست ازش برداشت بکنه ولیکن هم كما قال الشاعر لیکن روز ما كل شيء في البيداء يقتلها و والماء فوق ظهرها محموله <تصفح> سلیج اولو به اینجا میگه که شتران سفید رو میبینی در صحرا و بیابون از تشنگی میمیره والماء فوق ظهرها توی وهانا شتر پر از آب ولی نمیتونه از اون آب استفاده بکنه و الماء فوق ظهور محموده بلکه بر دوش خودش توی اون کوهانش از اون آب داره هم میکنه ولی که نمیتونه از اون آب استفاده بکنه حال روز ما مسلمان اینه نتونستیم درست از قرآن استفاده بکنیم کسی نبود این قرآن رو درست به همون برسونه و ما هم دنبالش نبودیم پدر مادر ما هم دنبالش نبودن مهم براشون زیستن و زندگی کردن و پول دروردن و خوردن و خوابیدن و عاشقا بوده مهم براشون اینه حالا نم شما برید نگاه بکنید مگر غیر از اینه حال و روز ما توی ایران ما 80 میلیون زندگی میکنن 30 میلیون افغانستان و تاجیکستان هم 30 میلیون شما کلا در نظر بگیرید از اون فارسی زبان خودمون بالای 100 بالای میلیون غیر از اون کردش صحبت صحبت ما رو دارن میشنن. غیر از اون بدوچش غیر از اون ترک ترکمنش همینا بالاخره این زبانی که ما داریم صحبت میکنیم میدونن خب این ما مخاطب داریم چقدر از این مخاطبین ما هممغمشون تغذیه روح و روانشون بوده با چقدرش؟ شما بگید پدر مادران شما چقدر هممغم تغذیه بدنتون تنتون داشتن و چقدر هممغمشون تغذیه روح و روانشون بوده؟ از صبح که بیدار بیشن میره سر کار مادر اومده خونه رو پاک بکنه تمیز بکنه غذا رو بذاره جلو اون بچهش بخوره با گنده بشه و بزرگ بشه بعد آخرشی افسورد است بعد آخرش نمیدونه چه کار بکنه کجا بره کجا بیاد نه نماز نه روزه نه ذکر نه یادی از اللهی هیچ چیزی از اینها براش مطرح نبوده خب چی توقع داریم اون بچه‌مون چی ب... چطور بار بیاد بچه‌مون چطور دم دستش ما دم دستش الان همین یوتیوب هست چقدر شما بیننده دارید که دنبال تغذیه روح روانشون هم تغذیه فکرشون هم تغذیه درست این فکر چقدر دنبال این و چقدر دنبال دنبال بیبندواری دنبال تو همین یوتیوبش چقدر ایرانی هستن الان دارن کلیب دنبال میکنن فیلم دنبال میکنن فلان دنبال میکنن برای چی؟ برای که وقتشون بگذره این شبشون صبح بشه انده کم کسانی که تموال حقه جیویه حقه. شهافتمی سبب و هو الاهم سبب و سبب و مهمترین سبب سبب الحد سبب ریج از خدا و دینش. و هو سبب راجع به المحد نفسه سببی که بر میگرده خود اون کسی که دچار الحاد شده. چرا دچار الحاد شده؟ بحث یک بحث روانی داخلی شخصیه. تأثیر بیگانه و بیرون نیست. یک مسئله درونی هست ف حدون و نکس عقیگی اللااقت من قبلی کبرن بین نفسه کسانی که می بینید دوچار هاات شدن علت اصلیش بر به خود اون شخص به عقب برگشته روی گردان دین چرا چون دوچار کبر و غرور شده دچار خود بینی شده دچار خود شیفتگی شده؟ خودش رو بالا می برتر میبینه از دیگران بهتر میبینه. نه محمد که صحابه که یعنی مسلمان ها چیه چهارتا کتاب نوشتن. چی هست تو قرآن قرآنش اون سنتش. خیلی خودش رو داره بالا میبینه. خیلی به علمش و اون درس و تحصیلش داره مینازه. رفته کتاب خونده اینقدر گوشش خونده نیچه شوپ ناور. این اینقدر دوزنه. اینها پرفوسور بودن. کتاب هاشون تو دانشگاه های انگلیس و لندن و نمی اروپا و برلین و آمریکا و اونجا دارن تو دانشگاه ها می خونن آیا اونها با کتاب های داروین پیشرفت رفت کردن با اون نظریه تا کاملش به اینجا رسیدن الله اکبر الله اینها جز راهی و جز کج راه رفتن نیست راه گم کردید ببخشید الله جل وعلا در قران میگه ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم مبالغ يعني چی خدا داره میگه اینجا تو این الذين يجادلون في ايات الله اونایی جدال میکنن اونایی که بحث میکنن نسبت به آیات قرانی و به غیر سلطان بدون دلیل بدون برهان بدون مدرک اتاهم یعنی در مقابل اون آیاتی که از طرف خداوند اومده بهشون از طرف الله اتاهم يعني اتاهم من عند الله scriptures الله بهشون اومده در مقابل اون الله چی میخواد آیات کونی باشه چه آیاتی شعری باشه چه نسبت به اون قرآن یا چه نسبت به اون آیاتی که الله گذاشت نشانه و براهینی گذاشته در خلق و آفلانشت الله جل و الله شخص احساس وجود خودش انکار میکنه از چی خلقت شده نگاه نمیکنه که من از آب آفریده شدم میگه نه من از من میمون بودم پیشرفت کردم خب با اصل خلقتت آبه چرا رفتی به این میمون بنده خدا چسپیری حالا میاد انشاءالله نظریه داروینه چرا من نباید موش باشم چرا باید میمون باشم حالا اونجا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت این فی صدورهم الا کبر الله داره میگه یعنی از داخل اون شخص ملحد این مسئله درونی هست چیه در درون خودش یک خودبینی و خودشیفتگی داره که سبب شده که بیاد آیات خداوندی را ردش بکنه ما هم مبالغی اونا نمیتونن نمیتونن آیات خدا را این کار بکنن نمیتونن هر چقدر هم تلاش بکنن هر چقدر نظریه بدن نظریه. نظریه حتی گفته میشه نظریه یعنی یک فرمولی را اخترام میکنن یک مسئله را مطرح میکنن ذهنی یعنی واقعیت نداره نظریه هست نظریه پردازی میکنن داروین زمانه که این نظریه تکامل خودش را میده این نظریه هست یعنی برگرفته شده از یک تخمین گمان خب این گمان داره میگه، این گمان اونها رو به جایی نمیرسونه این گمانه این تخمینه این نظریه اینها نمیتونه علمیت داشته باشه اینها نمیتونه یک تطبیق واقعیه داشته باشه که بخواد و بتونه اون نظریه نه که نظریه قرآنه واقعیت های قرآنی را زیر سال ببره اونا واقعیته اونا حقیقته خداوند وقتی که اساس خلقت را یاد میکنه که از آبه از نطفه هست و اون جنین یک مراحل را در رحم مادر طی میکنه از اون آب سپس خون لخته سپس گوش ویژه که این حرفا زده شده توی قرآن 1400 سال قبل سونوگرافی بود کال بود شکافی بود اومدن کال بود شکافی کردن مثلا رحم زن رو باز کردن جنین رو در مرحله 4 هفتگیش و 8 هفتگی شده 12 هفتگیش اومدن بررسی کردن نه والله نبود این چیزی که در قرآن اومده با این دقت این مراحلی که جنین داره طی میکنه واقعیت حقیقت یا نظریه است بله در اون زمانی که مطرح رحمی شد که سونوگرافی و کالبوتشکافی و نمیدونم این مسائل روز نبود بله تو اون موقع شاید به عنوان یک نظریه نگاهش میشد ولی الان دیگه واقعیت حقیقت چون علم روز داره ثابتش میکنه حقیقت اینه ولی که داربین زمانی که میگه که من اساسم میمون بوده واقعیت یا مجرد یک تخمین و گمانه؟ واللهی مجرد یک تخمین و گمانه از کجا؟ چرا؟ چرا یک تخمین و گمانه؟ حالا خواهد من انشاءالله بهش خواهیم فرداخت به وقتش شاید امروز هم وقتش نشه انشاءالله فردا که نیستی میده به وقتش شاید پس فردا انشاءالله در خدمتون باشیم و این مسئله رو مطرح بکنیم وقد وقَدَ أَدَّى هَذَا الْكِبْرِ الى ثَمَرَاتِ منها يعني این کبر و این غرور براي هم براي خودش یک سمره‌هایی داره. یعنی اس یعنی سبب شده این کبر که پاشم به لغزه و این لغزه سبب شده که بدجوری بذاریم بخوره اولش هفلاش هنیو کذب بدين الله. اولش خدای خالق خودش که باید شکوزار باشه و را فریده اقرار بکنه به وجودش خدا را انکار میکنه الله متعد را انکار میکنه اولین مشکل قال تعالی بل كذبوا بما لم يحیطو بعلمه قرآن را نفع که سخن خدا رو درن نکردن خب دوچار تکذیب شدن الان مثلا شما بیدت همین بحث جنین رو من مدره کردن علم روز تأهیدش میکنه خب ولی ابو جهل و ابو لحبش و همثالش از اون مشرکین رو زمانی این انکار کردن میدونست حقیقت و واقعیت این آیات چیه؟ چی رو دارن انکار میکنن؟ یک واقعیت حقیقت علمی الله داره میگه آفریج شما به این ترتیب بوده آب سپس سخونه لخته سپس گوشت سپس سخون سپس دوم و کسه العظام و لحمه و سپس بعد از اون گوش میاد روی اون سخونها و جنین پدیدار میشه پیدایش پیدا میکنه و به وجود میاد و آخر روح درش زمینه میشه خب وقتی که انسان علم نداره وقتی که انسان بینشش باز نیست میاد انکار میکنه ثانیا الإعراض وقتی که من دینو بی بیارزش بدونم، پوچ بدونم قرآن چی توش هست؟ چی داره این قرآن؟ وقتی که من این نسبت به دین خودم بدبین بشم وقتی که من خودم دینم و چیزی نشمورم یعنی ارزشی بهش ندارم، قائل نشم خب، دیگه دنبالش نمیرم، نمیشنمم یه گنجی هست که به درد دنیا و آخرتت میخوره نسبت به این گنج بدبینین نسبت به این گنج این گنج رو ارزش میدونی شما قال سبحانه و تعالی الله متعال میگه و ما تاتيه من آیات من آیات ربم إلا كانوا عنها معرضین حقیقه واقعیتینه انصار رو یگردن چون قدرش نمیدونه چون ارزش نمیدونه ثالثا الفرح بما عنده من علوم کاسیده یک علمی داره بی ارزش یک سری کتاب فلسفه و منطقی خونده خودش با خودش گیجه خودش با خودش گیجه این نمیدونم تساصل حوادث رو میاد مطرح میکنه یه بار بحث قدم رو نمیدونم فلان رو مطرح میکنه اصلا با خودش گیجه حریم طرف رفته مثلا این همه کتاب رو خونده از این پروفسور و اون پروفسور و از این اندیشمند و دانشمند به قول خودش و فریخته و بزرگان یونال با خلو خودش ولی که آخرش بدن اون کتاب فرهیخته چیه؟ یک علمی بی ارزش یک عده خاصی فقط درکش کردن و میتونن درک بکنن اون علت و اون معلول و اون نمیدونم اون مزایلی کلا اینا بولدش میکنن و بزرگش میکنن یک عده خاصی فقط شایدم درگ بکنن شایدم نمیتونم درگون کنم شاید چون چرنده چرندیاتی هست اومدن به خورد ما دادن اومدن از جیب خودشون در بردن. از اون علم کاسدشون علم ارزششون اومدم معارضت بکنن با اون علم کاسدشون معارضت بکنن با حقیقت واقعیت یعرضو به شرع الله عزیز و اومدن با اون چهار تا فلسفه و چهار تا قاعدة فلسفية منطقي بقول خدشون ومدن قرآن رزي رسال ببراه عزمة الله وفرين شجر رسال قال تعالى فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بي يستهزينون ومدن با تمسخور رشخان نسبت قرآن وصخنان الله جل وعلا ومدن برخور دي زشت خاطر چیه اندک علمی که داشتن. چهار تا قاعده بلد بودن، چهار تا کتاب خونده بودن. فقط اونها رو بزرگ میدونستن. ولی که در مقابل اینها با اون روی گردانیشون ناچیز بشموردن و پوچو بیهوده. در صورتی که اون چیزی که خودشون دارن پوچو بیهوده است. شما به خدا و من بگید. واللهی سبحان الله عجب کتابی داریم. ما این قرآن کتاب الله جل و علم. چه از عظمت الله جل و حاله آفرین چه از اون درس های تربیت و نمیدونم از بحث خانواده و زندگی و چه از اون حالا مسائل ارس و میراس و قوانین زندگی که سبب میشه که بالاخره ظلم و ایجاد نشه و چه از خوبی و پدر و مادر و حقوق پدر و حقوق فرزند از انواح اون چیزهایی که ما در زندگی روزمره بهش نیاز داریم در این قرآن حکیمانه الله جل و علیه هست شما مثلا قصه یوسف را شما بخونید والله چه درست های این قصه هست والله چه درس ها چه پند ها چه عبرت ها از یک پدری پیغمبری با اون دوازده تا فرزندش با اون یوسف و با اون مسائلی که پیش میاد والله چه پندهایی توش هست پنده هایی که سبب میشه که قانون خانواده محکم بشه یک قانون یک خانواده اصلا به وجود بیاد الله دنبال پایداری و استقامت دنبال یک قانون محکم ایجاد بشه ولی اینا چی شما برید تو علومشونو بخونید آیا دنبال خانواده اصلا اصلا تشکیل بشه یک خانواده بعد اون خانواده محکم بشه بعد اون نزغات شیطان وسط نیاد اختلاف بین پدر و مادر و برادر و خواهر و برادر و برادر دیگر ایجاد نشه ارهام حفظ بشه و تقوا الله الذي تسالون به و ارحموا الاصره این با این شروع می‌کنه الله الله را زین نظر داشته باشید و بترسید از اینکه حقوق ارهامتون پایمال بشه از چه پدر و مادر و چه از اون خاله ها و عمه ها, ها و دایی ها و الی آخر خاله ها اینا حق و می دارن ارهام میخواد خانواده میخواد آدم لرتنگ نشه میخواد آدم تنها نشه میخواد کس کاری داشته باشه وقتش به خوبی بره بدترین ها تو ها انفرادیه. الله می‌خواد تو منفرد نباشی، تک نباشی، تاک نباشی. فقط گیر بشینی برای خودت و بری و بیای و ندونی با نتونی با کسی ارتباط برقرار بکنی. خب چه زندگی خواهد شد وقتی که زندگی ارتباط بین اعضای اون نباشه. تجارت به وجود میاد، کاسبی وجود میاد. الله دنبال اینه که اون کاسبی درست باشه، ربار رو حرام میکنه فلان و احکام معاملات تو قرآن مگه کمه؟ آقا اون ضعیفی که پول نداره که پول بهش قرض میدی حق نداری پول بیشتری که بهش دادی ازش بگیری این حقوق تو کدوم کتاب؟ از این کتابه فلسفه هست حقوق مالی، حقوق خانوادگی کجاش تو کتاب فلسفه ای اونان هست ولی والله دین الله جل دین عادلانه هست دین انصافه ولی که کسی که چشمشو بسته از این ها؟ بعد بهش رسوندن از دین اسلام اسلام رو بد می‌بینه اسلام بد نیست والله اسلام چیز خوبی درش چیزی نیست چهارمی و چهارمین مطلبی از لغزشا در مقابل اون کبری که در ما وجود میاد رابعا تقلید ائمه الضلال خب من خودشیفته شدم دوچار خودبینی شدم خود چی چه سبب شده که من دوچار خودبینی بشم خود برتر بیریم بخاطر خاطر اینکه چهار تا برتر را الگو قرار دادم. چهار تا برتری که گمراه بودن پشت به کلیسای خودشون دادن روی گردان شدن از کلیسای خودشون از آن کتابی که الله فرستاده بود اومدن روی معارضت بکنن با شرادین خداوند با عقل خودشون اومدن چهار تا سخن بیهوده زدن خب من اونها را الگو شمردم برای خودم، الگو دیدم، آخر آقابتش نی میشه، تقلید تقلید... اه... تقلیدی که... که منطقی توش نیست، عقلی توش نیست، فقط من اونها را چون بزرگ دیدم، سبب شده که ره رو به راه آنها باشم، چون اونها بزرگن، چون نیچه فلسوفی بزرگی در یونها بوده یا در آلمان بوده. قال جل وعلا الله جل وعلا مييت وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذیر الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون بيامبران وقتی که الله میگه ميفرساتيم به شهری جاي روستايي كه مردم هشدار بدن بزرگانشون خصوصا اون ناس پرورداش وان هاي كه در ناز و نعمت چی می گفتن می گفتن ان وجدنا ابانا علی امه موددی پدران ما رمانش چجوری بوده بزرگان ما بزرگان فرخشتگان خودشون خودشان بزرگ گش کردند یعنی داروین کل فلسفهش فقط اون بحث میمون میمون انسان میمون پیشرفت ها همش حلوشی روی <تصح> چیزی که بر مغان نیورده فقط میخواد بگه تو میمونی بعدش من میمون یعنی چی ب... به من الانی که انسانم اقدارم خرد دارم چی برنامهی داری حالا من فرازن من قبول کردم میمون بودم خب بعدش الان من چی باید باشم چه برنامهی برای آینده من داری آب بزرگانت بودن الان چی الان من چرایی باید برم من با چه کار بکنم شما میگید نمیگید در نظر تکامل بعد انسان با پیشرفت کن همونطور که ژنش پیشرفت شده پیشرفت کرده خب پس بذارید پس منم به فکر پیشرفت خودم باشم چه چی چیزی آینده خودم برای نسل بعدی خودم دارم آیا دنبال نسل هستم شما که دنبال آزادی اید دنبال خانواده و زندگی که نیستید شما میخواد دختره آزاد باشه پسر هم آزاد باشه ازدواج هم که صورت نگیره اون پسره هم که به دنیا میاد بی پدر مادر باشه کسی <تصفح> کاری که نداره نه خاله نه همه چون دینی شما قبول ندارید بعد اون پسره بی و کار دلتنگ فوشم بهش میدن بی پدر چهار تا فوشم اینطوری بهش میدن اون پسره هم سر شکسته خب چون بی پدره فوشم تو سری خورم هست مال اینو دزیمی کنه و بر می داره و نمی به این میزنه و کتک کارش می دو کار درست نیست اشتباه بیترویت نباش بیادب نباش به در مادری که نیست می پدر مادره. شما دنبال این دیگه دنباله این آزادی که شما میخواد برمقام بیارید این چیز هست تو کتاب به نظر شما به مسائل پرداخته و اون بچه چه بچه میخواد بیاد با اون آزادی که شما دارید دم ازش میزنی شما میخواید همجنس بازی روش پیدا بکنید.شهعتون این دیگه عدالت باد باشه. انصاف فارد باشه اینا بالاخره خوب بلاخره این جنشون این تهوریه چی میخواد چه نسلی میخواد بیاد بعد از اون دوتا مرد و نامردی که با هم دیگر از زواج کردن اون نامرده میخواد حامل بشه میخواد بچه ای را هم بکنه یا بیاد بچه ای دیگران را بذاره بزرگ کنه شما دنبال انقراز نسل بشریت هستید دنبال اینکه نصر رو از بین ببرید با این کارتون این حقوقی که شما دارید در مجلس می‌ذارید به خاطر اینه به خاطر اینکه 4 تا آدم ثروتمند قدرتمند بر قدرت بشینن و بقیه نابود بشن برن قانون جنگل دیگه قوی تر بمونه اون ضعیف‌تر از بین بره و نابود بشه این قانون آزادی شماست ولی که الله جل وعلا اینجوری چیزی نمیخواد الله جل و علا انصاف، عدالت مهربانی، خوبی، خوشی، ارتباط اینا میخواد، تعامل حق ضعیف، حق مستمند همه اینا اسلام بررسیش میکنه و آخیراً آخرش نتیجه کبر و غرور. الثمر اثمر و نهایی وحیه آخرین نتیجهش دوری از حق دوری و میل و گمراهی راه تو گم میکنی روی گردان میشه از حق و سبب میشه که ا بدبین بین نسبت به دین و دیانت نسبت به خانواده و جامعه قال ازشان الله جل الان می بیاد فاملا فلا الله قوبه. وقتی که تو نخواهی که هدایت بشه دنبال راه درست نیست و هدفتم پیدا کردن راه درست نیست. الله هم توفیق راه درست رو را است میگیره تو نمیخوای سخن خدا رو بفهمی دنبالش نیستی اون کسی که دنبالش بود جفری لانگ کی گفتم کلی بشه گذاشتم از زبان خودش بشن اون کس بشنوید اون کسی که دنبال حقیقت دنبال راه درست میینه پیداش میکنه ولی اون کسی که فقط چدال میکنه بحث میکنه فقط خودشو بهتر و برتر میبینه اینو نمیتونیم به راه بیاری اون کسی که خوابیده رو میتونیم بیدار بکنیم ولی کسی خوادش رو به خواب زده نمیشه وقتی که تو به سخنه ارزش قائل نیستی فقط مسخره رو میدونی این ریشش نگاه کن این پیراهن کتایش نگاه کن این نمیدونم این عربه این عجمه شما وقتی که با نظریه تبعیض به ما نگاه میکنید طرف مقابل خودتون با تحقیر نگاهش میکنید آقا این عربه عربه هنیچی انسان نیست آقا این درس میشه عربا خونده یا درس در دانشگاه بیگانه خونده یعنی چی بیریشو میخندی به بی دین و دیانت ما میخندی همش خورش خند همش مسخره مسخر همش تو سری زدن فقط تو بزرگی تو خوبی یعنی اگر کت و کروات اینجا اینجا می اینجا می, پوشیدم, می حرفم اینجا برای شما مدرک میشد مثلا شما چه کار شکل قیافه دارید مگر مدرک ما در حرف ما نیست در سخن ما نیست من چی دارم میگم چه حرفی دارم میزنم باید به حرف داد باید حرف شدید چی حرف من میزنم مهمه من کی هستم و چی کار هستم کجای هستم مهم نیست آیا زبان من منو میفهمید یا نه اگر دنبال حقیقتیم که میریم دنبالشو حقیقت رو پیدا میکنیم ولی که چون دنبال حقیقت نیستیم یَدک میکشین چرا این با این شکل قیافه است چرا این عربه چرا این نمیدونم جنوبی اون تهرانیه؟ این اصفهانیه این شیرازی این بندریه این نمیدونم بلوچه این خب یعنی چی بلوچه نمیتونه بفهمه عربه نمیتونه بفهمه اصفهانیه نمیتونه بفهمه تهرانی فقط میتونه بفهمه سبحان الله بعضی جا آدم درد میکشه خلا مثلا من خودم خب زیاد رفتم توی نان از این شهرسا اون شهرسا استاد دانشگاه خب طرف مثلا باش حرف داره میزنی یا نگاه میکنه با با با اون با اون تحقیر و با اون سزام از خرش مثلا داره به مدرکش داره مینازه یا یا با اون چی بهش بگم <تصفيق> با اون تحصیلاتش خایه‌ها که تو تحصیل کرده نیست اصلا درس خونده خب ولی منم تحصیل کردم من هم تو دانشگاه درس خوندم از از لیسانس و فوق و لیسانس و دکترا و و و و, و, و الی آخر خب منم خوندم مطالعه کردم منم اهل مطالعه و تحقیقم من از الان از کتاب نمیخونم مگه منم دارم کتاب میخونم مطالعه میکنم تو به حرف من بیا گوش بده اصلا من چی دارم میگم شما حاضر نیستید سخن رو بشنوید اصلا ارزشی به من و سخنم مثلا قائل نیستید خب این شخص چجوری میخواد هدایت بشه وقتی انسان راه را میتونه پیدا بکنه که به دیگری و سخنش ارزش بده وقتی که بی ارزش باشه اون سخن زی نظر تو دیگه هیچ وقت توقع نداشته باشه که حقیقت را پیدا بکنی و متاسفانه این کبر و غرور واقعا بیداد میکنه یعنی واقعا مثلا لاخر من درست دانشگاهی هستم تحصیل کرده دانشگاه هستم از کشوری به کشور دیگر هم درس خوندم و الحمدلله تسلط دارم هم زبان فارسیم، هم زبان عربی هم زبان انگلیسی ولی خب وقتی که میام مثلا ایران از شهری به شهر دیگه میرم ولی با می دیگه و زاویه دیگه بهم نگاه میشه واقعا رنج میبرم رنج میبرم که به شکل قیافه هم نگاه میشه نه به به اصالت حرفم حرفم منشاءش چیه این درده، این رنج این رنج متاسفانه و این تبعیضا هست وقتی خودشو شخص برتر بینه توقع داری به راه بیاد خب محور اولی بحث شد اما محور دوم پس محور اولی بحث اسباب الهاد بود اون هفت سبب رو برش مرور کردیم هفت سبب اصلی اسباب دیگر هم شد باشه ولی خب اینا مهمترین اسباب الهاد بود اما محور دوم بحث اه، اون اه، پایه های الهاد اون چیزایی که روش تمرکز داره الهاد. دعای ملحاد و مرتکزتی و نه جلدی قام علی الفکر الهادی تأصیلا و, الهاد و دعوته اون راه منشی که ملحدین دارن چه از لحاظ قواعدی که گذاشتن برای خودشون و چه از لحاظ اون دعوتی که دارن با اون رسانهی که در اختیار دارن. انواع رسانه دستشون تلویزیون گرفته گفتم نت گرف، انترنت گرفته، اینترنت گرفته. انواع وسائل برای ترویج فکرشون به دست دارن خب یک اصولی برای خودشون دارن زوابطی دارن قواعدی دارن که اینجا ما میخواهیم برش بروری بکنیم ابتدا یعنی باقیان یقان اول ابتدا باید گفته بشه لیس للفکر للحادی نظریتون متکامله تفسر کل الظواهری من البدایه لنهایه اینجا اول باید ما بدونیم فکر الحادی با اون نظری پردازیش یک نظریه کامل و ای نداره که تمامی اون چیزهایی که در طبیعت به وجود اومده و به وجود خواهد اومد، چیزی که بوده و خواهد بود، یک نظریه کاملی نداره. یعنی یک قاعده بیاد، بیاد بگه یک نظریه بده، تخمین بده، تخمین بزنه. مثلا بفرض الا بیاد ان شاء الله مثالش شما مثلا میگید اصل انسان میمون بوده خب اصل سوسک چی بوده اصل مورچه چی بوده آیا برای اینم مثلا شما نظریه دارید این ندارید آیا همین نظریهی که روی انسان هست اون نظریه روی سوسکا حشرات هم هست یا نه همه رو را نیموندن کالبود شکافی بکنن این فقط یک نظریه دادن در مورد انسان انسان میمونه چرا چرا شباهت میمون داره خب چرا میمون این همه مو داره روی تنش بلی تو حتی تو صورتش بلی من اینجا پیشانم که مو نیست اینجا پیشانیم مو نیست اینجا این قسمت من مو دارم چرا اون زنی اصلا ریش نداره چرا مرد ریش آمدی میمون نه میمون اصلا نه رو نرو مادرش همش مثل هم دیگه مو داره ولی چرا ماهانه اصلا چرا توییزه هست چرا من با ریش داشته باشم چرا ولی اون زنه نداشته باشه یک قاعده یک فرمول کاملی نیمونم ملحدین ارائه بدن که همه اون مسائل رو در بر بیگیره و تو جیب و عن کل الاسل الحرام بیاد مثلا کل اون سؤالات پاسخ بو باشه سؤالات که تو ذهن ما مدرم میشه چرا من مرد برخلاف میمون میمون رو مالش همه شون مو دارن ولی چرا من اینجا مو نیست ولی اینجا مو هست چرا اون زنه باید می از من داشته باشه من اینجا باید ریش و داشته باشه ولی اون زنه نداشته باشه میگه نه شاید یک زنی هم ریش داشته باشه ولی شاید یا اونم یک در میلیارد شاید پیدا باشه یا یک ست در صد ملیار اینما یقدم الملاحده للناسی مجموعه من الظنون والافتراضات التي لا تقعوا عقلا یک فرضیه هایی هست که اون ملحد میاد ارائه میده بر اساس گمان حدث حدسی میزنه تقنع عقلا یعنی نمیاد مثلا من عقل من رو متقاعد بکنه مثلا من منو رو متقاعد کن آقا که <laughs> چرا من باید میمون باشم سوس نباشم اصل نباشم خرس نباشم خرس که خیلی بهتره که از میمون میمون ما هم دستایی بندهش زوری هم نداره خرسه بگیرتش نابودش میکنه یک مثال درستی میزدی بگید یه <laughs> چیز خشتیفی بسلا میگفتید آها سیگ گفتی مثلا آهو گل کیف می‌کنه مثلا بفرون نمی‌دونه به به مثلا آهو بس مثل عصب خوشتی به یعنی ولی خب میمون یعنی مثلا یک شخص میگه آقا میمون یعنی میمون باقیر نیست تو رو خدا به من میگی چرا یک مثال خوب درستی ارائه هم ندادن یعنی تو یعنی با عقل و فطرت انسان جوری در نمیاد یعنی آدم دل و چشم هم نیست یعنی آدم زشتش میاد یعنی يعني إن كلمة رأى إنسان أطباب تحقيل استفادة ميكنا ولا فيه غليلان إنسان هم سيراب نميكنا يعني نظريها وقد دعم الملاحدة فكره بنظرية علمية من هنا ونظرية فلسفية من هنا جاي دس بدومنة يك نظرية علمية بخلوقتشون تجربية ميشان جاي دس بدومنة فلسفة ميشان وجمعوا بين هذه وتلك جايهم ومدن مهم نقول قاتش كاردان فلسفة علم تجربي، فخرجوا من هذا التلفيق با میکس کردن و قاطی کردن این دوتا روش و هم به منهج هجین مشوهن غیر مقنع یک منهجی رو وردن یک روشی بی اصل بی اساس زشت زشت, زشت یک شخص بیگه اگه میمونی زشت و من خلال تتبع وجده انمایوخیم علیه مناحد منهجم یرجع لمرتکزین و بررسیه و پیگیری آلا خصوصا بر رسیم ملحدین ما میدونیم که دو دوتا رکیزه تا اصل دارن برای خودشون اصل اولی نظریات علمی تجربیه نظریات علمی تجربیشون گمان زنی ها گفتین تجربی آقا سخونه فکر میمونی سخونه فکر انسان ولی الى آخر و الثانی نظریات فکریه فلسفیه و نظریات فلسفیه که ك... اینو انشاءالله در زمن بحث اشاره خواهم کن و لابد من بیان هاده این المرتکزه اینکه یکونو فهمنه للحاد دقیقا و عمیقا برای اینکه دقیق و عمیق الحاد را وصولش را یاد بگیریم و بفهمیم که چی بنا شده روی این دو تا قسمت باید زوم بکنیم باید بپردازیم باید دو این دو تا مسئله باید خوب درکش بکنیم نظری تجربی و نظری فلسفی تا بفهمیم این چیزی که بهش از میکنن چی هست. آیا واقعا یک پشتیبانه علمی میتونه داشته باشه یا نه. مرتکز الول، رکیزی اول، ساویی اول، پردازش اول، نظریات علمی تجربیه. حالا اولین مسئله، حالا همون گفتم رکیزی دیدگاه اول، حالا اون نظریات علمی تجربی. النظريات والعلمية التجربية التي يعتمد عليه الملاحدة هي باستقران وعن دو تا نظريات علمية تجربية دون وحسن ولو كل نظرياتش به دو تا أسبب علميات نظريات علمية غير صحيحة يك نظريات ددقاء ها هست یك فرمول ها هست جمع غير صحيح ما درست يكسرين نظريات دادن ولكن درست نيست وكثير من تلك النظريات التي ملأت الدنيا الضجيج ضجيجا في القرنين الماضيين بدأت تخبو لتحول محلها نظريات تتفق مع الحقائق اليمانيه والدينيه خير از نظريا هست داد و شعار دادن سر صدا پا كردن با اون نظريا اون نظريا نابود شدند از بين رفتند ديگه اصلا ياد دي ازشون نيست چون سعي نبوده درست نبود یک نظریات دیگر اومد جایگزین اون نظریات اون نظریات چی شد از بین رفت خیلی جا هست بحث میشه مثلا درباره زمین مثلا زمین کوروی هست یا زمین مسطحه نگه که تو قران اینطوریه نگید خو... نمیدونم مسلمان اینطوری گفته نمیدونم بن باز این گفتی آقا فلان مسلمان این گفته فلان کسی اینطوری گفته یکی گفته دایره یکی, یکی, یکی, یکی, یکی گفته این پیش غربی هم هست تو کتاباشون هم هست دناژگاه هم هست حتی تو امریکا قال معروف یک باند بزرگی هستن که میگن زمین هست، زمین اصلا مسطح اصلا اون یک نظریه بود یک دیدگاه بود قبل از اینکه ماوراء به فضا فرستاده بشه و قبل از اینکه ها ها از این ور زمین و اون وره زمین پرواز بکنن و دوره زمین بچرخن. خب یک کسای اشتباه کردن، یک کسایی درست گفتن و الی آخر. بحثم الان روی این نیست. بحثم زمین کراوی نیست. ولی خب بحثم اینه که یک کسی اومد، یک نظریه داد، نظریه پردازی کرد، گمان زنی کرد، با توجه به حدسیات، یک حقاقیق حقاقی علمی اومد جایگزین اونا شد فالواقع یشد ان نظریات العلمی الحدیثت تبتعدن الالحاد و تختار من الیمان یعنی وقتی که انسان میره واقعا اون حقیقتهای علمی را بهش مینگره و بهش توجه میکنه میبینه که اصلا حقایق علمی انسانو به طرف ایمان میکشونه ده به طرف الحاد لذوات علمی بس جنینی هایتون هست که گفتم من واقعی که تیر کرده مثلا قرآن عجیبه چطور مثلا یک حدیث رو بهتون بگم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم تو حدیث قرآن نیست حدیثه می فرماین درکت نماز داحا و خونی نماز چاشت بین نماز صبح و نماز ظهر وسط اینا ساعت 19 کفاره سی سد و شست مفصلته که تو بدنت خدا گذاشته منت برسدت گذاشته کفاره سی سد و شهست هم هم که اون روز نبود خدا بهت این منت داده تو میخوای شکوزارش باشی این منت این منت مفاصله که بین و سخونه ده. رو تو رو نماز بخونم شکوزار خدا باش خب اومدن کافی کردم الان ببینم واقعا درست یا نه بری کتاب بخونید بریمیسید عدد مفاصل بدن انسان ببینید موافق و مطابق با این حدیث هست یا نیست؟ چند تا مبسل انسان ده تنش در تنش داره؟ دقیقا یادم مثل حدیثی 36 یا 330 ولی خب همی 300 هندیه دقیق طبقه هون چیزی که توی حدیثه علم شکافی همینو میگه کی گفته 1400 سال قبل زبان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اومدن اونا خالبا چکافی که ادنشو مردن اینقدر مفصل و اینقدر غضروف تو بدن انسانه. خیلی از مسائل هست. انسان رو به سمت ایمان میگشونم. من هایی که خدا بر سر ما گذاشته و در تن ما گذاشته اعضا و این سلول ها، این تنی که در دست ماست. به در دنیم الان این ناخن ها تغذیه میشن با رگای خونی که زیر پوستایی ما هستن. رگای خونی از قلب میره به پا میاد به سر میاد به چشم میاد به گوش. چقدر از اون رگای خونی هست خون می میده. چی میگه این پزشکان روز؟ چی میگه در مقابل این تنظیماتی که در بدن انسان این رگایی که اگر به هم دیگه بسشن دور زمین بچرخی تمام نمیشه یک تن یک تن من این همه رگای خونی توش این رگا رو به هم دیگه بس دور زمین بچرخ تمام نمیشه. میگه همینطوری میشه که این رگاه اینطوری به وجود بیان فی حین ان دین ولله الحم ثابت و مستقر لای تحولای تبده دین الله ثابت دین متغیرات نداره دین ثابت حق و حقوق ولی که نظریه ها قابل تغییره یکی دین نظریه های بوده علم باطل شده دین خدا نه ثابته همونه هیچی عوضه میشه لانه وحی نه چون وحی خلا بندیه اللهی که از قبل میدونه. ثم اینه على تسلیم صحت شيء من تلك النظريات، فا اینها نظريات نظریات غير غیر ولا و كما شافیه التمثيل لذلك التمثیل و اگر ما بخوام بگیم که نظریه هم درست صحیح باشن نظریه هست نظریه گمانه گمان نظریه هست حدثه که نمیتونه همه جوانب امورو در بر بگیره و شفا بخش باشه سیراب بکنه اون تشنگی ما رو مرسی را كنا دم مقابل اون تشنگی در مقابل اون هلمی که ما شیفتشیم که انسان میخواد حقیقت رو ببینه و بچشه اصلا لمسش رو کنه اون نظری ها نمیتونه تشنگی ما رو برطرف کنه نمیتونه اصلا تو نظریه است قابل لمس نیست من میتونم دست خودم رو لمس بکنم حس بکنم ولی اون نظریه گمانه مزه هم نداره که مثلا من مزش بکنم یا و أقل خودم من بتونم اون نظرية در واقعات حقيقة ببينم الثاني نظريات صحيحة بعض از كامل نظرية صحيحة ولكنها لا تعد بعيدا عن صحب تلبساته نظريات صحيحة ولكن با يكبر ششيه از مغالته با يكبر ششيه از مغالته أن تكون نظريات تكشف عن أسباب و وسائط و علاقات بين المخلوقات و مدنك نظرية صحيرة مغالطه اندازی کردم و از اون نظر صحیح برداشته غیر صحیح ازش گرده ولکنها لیست تعلیلاً لوجود الکون اون نظری ها نظریات صحیح ولی که اومدم گفتم با مغالطه اساس وجود و خلقت توافرنش این کون و نوع پیدایشش رو زیر سوال ببرم على هذا الوجه دقیق الثابت القوانی بدون خالق و مدبر و حکیم و علیم کما یزون اومده با اون مغالطه اندازی حقیقت وجود خالق آفریدگار را انکار بکنن پروردگار عالم با این دقتی که این آفرگنش رو به وجود برده این کون و کهکشان و کیهان وجود برده اومدن با اون مقالت اندازی اون قوانینی که خداوند مزاشد در حقیقت و در طبیعت اون قوانین رو اومدن معکوس جلوش دادن اومدن به نفع خودشون حملش کردن اومدن مقالت اندازی کردن و اونجا هست که حالا انسان بالا با مثالی که خاطمت خواهد, خواهد فهمید که اینا چگونه مغالطه اندازی کرده و من شاول خلل عند هؤلاء هو انهم لم ينفذوا من الاسباب الى مسببها تمامی اون اصل مشکلشون برمیگرده که این آفرینش این کهوان و این, این کهکشان‌هایی که وجود داره و این تن و جانی که ما در اختیار ماست اینا را بدون سبب دیدن مسببی را براش ندیدن خالق را با مخلوق را به خالقش نسبت ندادن اومدن انسان را کاری در نظر گرفتن که همینطوری به وجود اومده انسان بی چیز ناچیز انسان... عرضشش را از دست میده همینطوری همینطوری این پدره همینطوری این مادره همینطوری هم من پرزنده همه چیز همینطوری همین کشکی، علکی آخرش، یعنی کل اون نظریات، یعنی کل اون نظریات صحیح ولی که برداشت ها میخواد نتیجه گیری بکنن نتیجه گیری چی؟ نتیجه گیری اینکه که تو نداری تو چیزی نداری، تو کسی نیست پشتی بانت. تو همینطوری به وجود اومدی تو نداری در صورتی که قرآن این نمیگه قرآن به انسان ارزش میده دین به انسان ارزش میده قداست میده یک باور درستی میده اون انسانیتی که شما دارید دنبالش میگردید میبینید که هیچ تقاییری با اسلام و دین خداوندی نداره انسان بیاد با دید انصاف نگاهش میکنه، نگاه قرآن بکنه گاه اساس خلقت خودت بکن ارزش که خدا به تو میده ارزش من در چی درخواانوادم ارزش من در چیه در پدر مادر با پدر مادرم من عزیزم من رو تربیت کردم بزرگ کردم منو قطعش نسببت میاره به من میگه برذر باش به بر رواب بده ووق الله ازجننا من الرحمه در مقابلش فروتن باش بال تو فرش کن با خوبی مهربانی چی میشه؟ پدر افتخار میکنه با اون کارش زحمتش عرقش که میریزه. فرزند دارم طرف رازم کرده، سر بلندم کرده ولی که من این ادبیاتو رو نداشته باشم احترام و رو نداشم در مقابل والدینم چی میشه؟ سرکش، سرکش باشم یک انسان سرکش، خود باور. از همون اول با نعی محکم جلو پدر مادرش این ساده که رنج میانیم پدر مادر تا جایی که حاضر اون پدر اصلا گور اون بچه با دست خودش بکره ارید زنده بگورش بکنه از که نافرمانی، بد اخلاقی از اون فرزندش میده خب این اساس خلایی که اینا وجود بوده خلایی که این آزادی و آزاداندیشی وجود بوجوده بوده برخلاف اون حقاقیق واقعیت و حقاقیق واقعیت هایی که الله از نفس ما، از درون ما میدونه و نیازهای ما که میاد درمانش بکنه در ما و بیاد شکل قالب بهش بده اسلام قالب داره، شکل داره؟ ولی کن آزادی شکل قالب نداره. هیچ اساسی نداره. خونه هست، منزلی هست من دارم، درش زندگی می کنم. برای خودش ستونی داره، برای خودش تیواری داره، برای خودش سخفی داره. من اینجا نشستم یک قانونی حاکمه. ولی که آزادی چی یعنی بی بندواری، یعنی بی قانونی. خب، وقتی که بحث, بحث از مقادته میشه پیدا کشیده میشه، یک حقایق علمی برای چی برای اینکه به این اصل برسند چه اصلی اصل آزادی اصل بی اساسی اصل بی اساسی چی؟ اون نباستون باشه، خوبستون نباشه، سقفم نیست، دیوارم نیست. این بی اساسیه دیگه. اینا هست که اینجا مؤلف یاداوری میکنه بر ان شاء خاین ده شد. والا فردا نشد پس فردا اعلام میشه انشالله اصول این نظریه و هاش از کجا بر گرفته شده و چی از خصوصا نظریه داروین. خب من, من خلاصه بار میرم حالا تو خصوصا این نظریه داروین به عنوان یک اصل علمی که خودشون ارائش میدن اصل علمی تجربی آیا این نظریه صحیح یا نه غیر صحیح تو کدوم یکی هست؟ اولی غیر صحیح که اصلا نادرسته اصلا حذف نمی از آن جواب بدم وال رووس میام با, با همون چیزی که توجه که اینجا ملف گفته به یک سری نظریات هست که انشالله خواهد اومد نظریات صحیح اینجا غیر صحیمون اون نظر دا خواهیم داشت و صحیحش هم این خواهیم گفت و نه مقال تندازی من برابرداری ما درست که شده از اون نظریان شده هم بهش خواهیم پرداخت بامون روذنی مهم اینه که منو شما قدر همدیگه رو بدون قدر وقتمان قدر زحمتی که برای ما کشیده شده قد شناس باشیم قد شناس باشیم در مقابل این چشم که الله به همون داده در ما قرار داده بخونیم درست مطالعه بکنیم بی سواد نماشیم اون چیزی که به همون بد میرسونن قرآنی که به همون بد جلوه دادن قرآن رو بریم درست بخونیم درست نگاه قرآن بکنیم، سخن خدا بکنیم. نذاریم کسی به ما دکته بکنه و حرف کسی سبب بشه که من نسبت به دین بدگمان باشم، بددین باشم. نه. با دل, خودی، دل خودم. با میل و رغبت خودم برم بخونم چی هست توش کسی به من دکته نکنه. گوشم. میخوام حرف کسی را بشنم. خودم انتخاب میکنم حرفی که رو بشنم. بیا حرف رو گوش بده. گوش کن این گوش نعمت در اختیارت میتونی حرفت من رو بشنمی حرف کسی دیگر رو بشنمی با اختیار با خودت الیوی یا درست گوش بده گوش کن اینجا هست که انسان وقتی که نیتش پاکه دلش پاکه میتونه راه رو درست انتخاب بکنه و میتونه ارزش پیدا بکنه چون خودش ارزش داره. به وقتی که با دید حقارت نسبت مخالف خودش نگاه بکنه اصلا من ابتدا اصلا بیاد که آقا من اینو زیر سوال ببرم اینو بکوبم به زمین چون خیلی هستن، میان با ما جدال بکنن، بحث بکنن هدفشون چیه؟ ما رو به زمین بکوبن هدفشون این که کمر ما خورد بشه، آبری ما ریخته بشه هدفت این نباشه هدفت چی باشه؟ هدفت حق هدفت سیراب کردن دلت ذهنت قلبت هدف شفای اون رنج که ازش میبری از اون اشکالات و شبهاتی که در تو مطرح میشه به همین قدر اکتفاق میکنیم امشب شب سبحانک الله و بحمدک سبحان الله و بحمده و صلی الله علی محمد و علی محمد